سرکال خان مجرفی عزیز سلام امروز که شما این ویس رو گوش میدین شرکت نوین الماس با کمک و حمت چار پنگ ساله شما 9 ساله شده از روزی که شما توسطه خانم خانون مرادمند وارد شرکت شدین اون آروم بودن و در واقع مسئولیت و و تلاشی که داشتین برای شخص بنده خیلی جالب بوده تا به همین امروز که زحمت کامل مالی ما گردن شماست و با اون روحیه رهبری، با اون روحیه تیم کار تیمی که دارین، حداقل یکی از بازوهای شرکت که بازوی به شدت مهمی هست، بازوی مدیریت مالی، بازوی حسابداری رو راه انداختین، داره کارش رو انجام میده و این نشان از قدرت تصمیم گیری، قدرت رهبری شماست. امیدوارم که سیستم مالی نوبین الماس با حضور شما تا سالهای سال بیمه بشه در کنار امید عزیز امیدوارم زندگی خوب و شادی رو داشته باشین و در بهله دوم هم افتخار حضورتون تو نوبین الماس رو از شرکت نگیرید شاد و عبره و سرحال باشید